اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله سيدنا القاهرين المعصومین لا تجاوزنا تعالى عذار مشن الله معنا جميع المشرفين رحم الله رحمتک بحثی که واجبه صبر مؤمن و شباب المؤمن بود که از خیلی روایات داریم که سباب المومن پسو بار و ما هم روایات محتویر داریم البته در روایت لعن مومن بید. این عنوان یک روایت واضح صحیح نداریم اما در میان مساد رحمستانه زیاد دارن المومن لعن المومن که قاتل لعن المومن که و الاسری در لعن المومن اما ما اون مقدار نداریم در لعن در سب چرا داریم اما در لعن اینا در این توضیحاتش گذشت اجمالاً گذشت بلکه تفسیره انتحال بحث به موارد استثنان که مرموم شیخ قرمونه از حرمت صدب مومن بعضی موارد استثنان میشه مورد اول که بود که اون شخص مستحتر باشه و فیصل را عملاً علمان انجام, انجام بوده این توضیحش گذشت که بحث استهتار و علنی بودن ربطی به مسئله سب نداره سب برمان اون استحتار ربطی مسئله داره که خواهد مهاده شد در محل خودش که اگر مستحتر بود و علنی کار رو انجام میداد غیبت نداره شون قیبت در صورتی که قائم باشه وقتی علنی هستی بیجای باشه قیبت در باب استحتار اگر یک گناهی رو عملا انجام میده پس همین همه میدن اگر شما بشت گفتین شراب خورد ظاهرن این حرمت نداشت کن خودش یه قبول کرد یا گفتین فاسد اما اگه مثلا الکاز که مشعر به نظر عرفی به سبه مثل بیشرف مثلا این شاید مشکل باشه اصوافش با این روایات و که ما داریم اصواف این مقدار مشکله اون چیزی رو که حرنان انجام میده قبول اما اون که به استداف غیر از اونه علایی مثلا فرسون شبه خمش علاییست و لازمش هم پس بشه اینا رو گفتن خوب اشکال هم. اما بقیه رو مثلا بگه مثلا بی پدر مادر یا ولد الفرآن مثلا معلوم نیست یعنی اونا که قصد فرسن آصال خاص خودشون علاییان یعنی این استثناء اولی که من رو شهر خیلی روشن به ذهن نیست این به اون معنایی که هست. مورد دوبونی که مرموم شیخ استثنان فرمودن مسئله به اصطلاح بدعت اهل بدعت اهل کسانی که کارهای خلاف دین انجام میدن از شدیه که ما داریم میگوید یه واحده در کتاب کافی آمده که اهل بدع رو اون محض که فعکس رو منر وقی حتی فیهه و اونها زیاد که لایت من ناس مردم به اونها تمهی نکنن و سب بهم. اونا رو فوقشون بزین هر پوزش بزن از خیلی باید ربایت باه درس فرد صحیح به لحاظ سندی مشکل نداره لکن در غیر کافی هم نیامده منحصرا در کتاب کافی آمده و خیلی روشن نیست به تمامی. با یک حدیث وقتا زیده سنداره باه تنها با هم به معنی که دروغاً دیناد اثر بدی مثلا دروغه بگین که اینا پول گرفتن از شورای سفارت پول گرفتن که واسوسیان با فلان منافعی جه واسوسیه فلان دروغ بگین باه شما بیمه این انصافاً دلیل روشنی یعنی نمی با این با این لوازم وافذه چه مصادری رو اثبات بکنیم و لذا باید یک توجیه ماعی برای مورسش تا اینجایی بود که بحث ما از کردیم که برای توضیح روایت و برای پیدا کردن شواهد بر می‌گیم مدار به شواهدی که خود اهل بیت داشته که مدار روایاتی رو که در قرار عروه راجع به ابن عبی عذاره و راوی به احمد بن هلال و اینها نشان این و احمد بن هلال کسانی که به قول معروف شه سفراء مذمومین بودند کسانی که ادعای جاری باویت کردن محمد بن نصر نمهری و این جور اخرا ما روایاتی در ضمن ها داریم درست اما آیا میشه که می وارد استفاده کرد روایات زیاد در ضمن اون افراد و حالا بحثو دیگه اون روایات دغیق رو بخونه دوره واقعیتی که ما با در زن داریم که اینه هم قیل زیاد در اهل بدن همین محمد ابن عبیل زینر معروف به عبال خطاب اسم پدرش عبال اسمش رو مقلاس نوشتن مقلاس هم اسم عشور علیدی به بشه از بنی اسد بود بوده ظاهرش هم اینه که این محمد ابن یا ابو خطاب اسدی به هم نوشت مولا از اون چه اهل حالا نبوده علای حاله برزازی بوده پارچه پروش بوده و بلا اشکال در م... کوفه یک موجی رو ایجاد کرد با که امام صادق به خصوص خیلی در مقابل او ایستادن و از حاله رو منحرف که و قیام مسلحانه هم با هفتاد نفر انجام داد که همه شون شدن الا جناب آقای هبا خدیجه سالون مکرد که جان صادم بدر بود بقیه کشته شدن و هر حال و اساس یه نوع بی بندوباری را بکه عباراتی که درباره ایشان آنوزه و درباره انحرافاتش مختلفه از بعضی از عبارات در میاد که اون ریشه های بی رو در حقیقت ایشون گذاشت که نماز نخونن روزه نگیرن از صلاحات های از ذکات را یا که داره امام ما فس نه ماشه مثلا این شعاری این بود فرد شما امام بشناست دیگه مهم نیست الان یه در این که ایشان فرد منحرفی بوده و بعدش بعضشان کشته شد این جوی بحث نیست یه دیگه من حرف کرده یه نقل قولی هست که اسماعیل هم با ایشون رابطه داشته پسر ما فکر نمیکنم راست باشه خیلی بعید می‌دونم من این توضیحاتش رو سابقا هم اشاره کرده به هر حال گفته شده که اسماعیل مصنبی نبیز من خودین او خود. فکر نمیکنم. به هر حال بعید می‌دونم خیلی می و رابطه شون هم رابطه با بین اسماعیل مدینه با کوفه را هم جناب مفظره نومر جعفی نوشتن. اون هم بعیده شاید این که مفرزد خودش خطابی باشه خیلی بعیده رابط هم باشه دین اسماعیلی اون هم بعیده به هر حال هم کردیم این صحبتی بوده که اسماعیلی ها و گروه اسماعیل با تفکرات اول خطاب نزید بودن بعد هم یعنی فقط مثلا اسماعیل 138 مثلا گفته شده اول خطاب رو همه حدود ها باشه یعنی اول خطا که بیام کرد قیامون سلحانه همه از حکومت بنی حقاس بود مثلا حکومت ضعیف ما الان این حکومت بندازیم حکومت بنی از بندازیم و امام صادق رو بگذارم ایل از اون قلوب قلوب عملی قلوب عقائدی هم داشته میگونه من تیغنبرم اون صادق خداستم چیزه نعم و هر حال یک بیبد دوباری از این گروه نعم میشده و ما در میان اسماعیلی ها بله ها داره تاریخی میکنم عرض بکنم کار ندارم که واقعا رابطه یه هستی پس در میانه های دوم اگر این رابطه درست شده باشه ما دیگه بعد در اولاد و احباد و آرام مثلا قاندان اسماعیلی ها بعد اسماعیلی ها که به حکومت هستیدن سال چیستر تقریبا دیستان و هشت در مصر به حکومت هستیدن اسماعیلی ها. دلیل آن خلاقای اسماعیلی که استقبال خلاقای فاطمیه ما از این بی‌بردباریا آثار نمی‌بینیم. در رفتن کنیم این آثار نیست. می‌آتال اسماعیلی حلمت در حدود سال‌های 540 600 یا چی؟ 500-600 یا که با خود مولانا حسن علی زهرا استلام. ایشون اعلام میکنه که قیام قیامت شده و اعبایگگه رو اعلام میکنه یعنی ایشون امدراتی یه فرقه از اسمالیه های ایران که در قلعه علموت بودن نام اول در قلعه علموت بوده علمو مقدمه های منبری و داره بوده پشت و روی بوده مخالف و بعد بوخ و کرما و بعد شما بوده و من اینو کارهای زشتی این ها اسم این که دیگه الان قیام قیامت شده است و دیگه اینا تمام حلا شده است. و حتی به تعمیدی که می‌کردن، اگه هم که یه شراب می‌خورد، جاری می‌شد، حالا اگر شراب نخوره حدش می‌زنه، اینو این تعریفه و عکس مطلب شد و, و بعد از اون هم چون قلعه بعد از قلعه الموس، قلعه اصفهان بود، قلعه اصفهان شده شد دست حکومت خیلی بعد از اون قلعه همین قوهستان قاینات که قاینات خود ما چرا حسن حسره از اسماعیلی اونجا هستن اونجا هم بعد از مدتی بردن با و کردن و شراب و مسخره بازی اونجا این مطلب این شده قرار از حال ما واقعا نمیدونیم یعنی دقیقاً حسن آیا واقعا رابطه‌ای هست بین اسماعیلی ها و ابوالخطا قرار از اگر هم رابطه زیربیاتی بوده تا حدود 400 سال این رابطه خودش نشون نمیده به فکر در تاریخ ما این رابطه رو نمیدونیم الان چرا باز همون همون بازی ها رهنان همین آخانی ها این ف... طایفه از اسمالی ها بحره آخانی ها همون شورن یعنی همون مالی کنن اسمالی محاصر مندن آخانی ها و همون جماعت اول خطاب میخورن این راجعه به اجمال لسه اول خطاب اون وقت راجعه به ایشان تعابیر زیادی در روایت ما هستید کتاب مهجم استاد جلد 14 رو یه مقدار می‌خوام چون طولانیه این مقدارش مثلا حدیثی هست که سمعت ابو عبدالله علیه السلام میگول و ذکر عبد الخطا فقال اللهم لعن عبد از درعش که رفت انه خلفنی و قائدا و علا فراشی چون در کوفه به اسم حضرت قیام کرده از این من از دستم آرامشون سلطه سیاسی افتاد دنباله خیال میکنه من دنبال این عمل مصلیانه هستم خرفا خه قائما و قائده و فراشی اللهم اعذح و حر الحديد مثلا برخی روات این معظم خیلی رواتن سند روشن نداره بعد روات نبی عبد ای الله این جای دیگه انزال الله القران سرعهن به اسماءه هفت نفر هستند که خداوند در قرآن اسمانشون رو برزه تمهد قریشون سته قریش پنج داره از بین چیش داره از بین بود لترک و عباده هم چون در عبادگرداره که اینا عمدن این کاره کردم خواستن احانت رسول الله بشه یعنی اموی پیغمبر در آتشی و سأل تو قبل الله عزیز جل حالی قدن بقی کن الامن تنظر و شیاطی تنظر و علا کل افاکن افین عنوان افقاق بردیم قال سبعه امام فرمودن مغیرت سعید و بنام و ساعد و نهلی و الحارس و شامی و عبدالله ابن و حمزت ابن انبار زبیری و عبالخطار حالا از این تعابیر یعنی من محل شاید اینه که حضرت بین حفظ اهمشون شنون مرمونن و همه همین طور. بعدشون شداخترشون چیه که افقام داره اما اونایی که عیدشن و اصلا تراصل دولت کشه شدن تراصل خود بنی عباس کشه شدن بله و یک درواید که اصلا عجیب داره از امام رضا علیه السلام که یکی از مناشع اختلاف درواید امام صادق و امام باقر همین مغیرت ابن سعید اسمش عبن مغیره بود این خبیص یک گروهی داشت اینا رو میفرسته از ظاهر و صلاح هم بودن من پیج زورا هستم این حال کتابو سید ماستان ازیش نه میاد مینا اون صلاح صالح حدا تو کتاب اضافه میکنه تو حاشیه فیلم و اونرا اصلا جا بعد کتاب رو میگم زورا زاهر میگم آدمو خوب نگاه نمیکرد که این چیزا تو چه با صاحب مصحف هست که در راش میگفت اینا رو چه یکی از مناشئ تحریف در روایات اهل بیت که یونس از تول از میکنه همین مویرات ابن سعیل خدیثیست که اسمش امروز در اینجا هر بود. ببینید امام تعبیر بکنه از این افراد افاک افیم. دروگوهای گناهکار. خب مثل این شاید مستار همون حدیث باشه که افرادی که افرادی که افرادی بدهتن میشه سرد بشون کرد. امام گفت افاک افیم گردید بالتر. بلی. ها اینطور. بلنده. بعد بعد احادیث زیادی هلا من بخوام بخونم طول میکشه و اون چیزی رو که بعد روایت دیگه مثلا حضرت اباعدههم الله این هفتاد نفر همینشون کشته شده در اسم اون الله و ازختهم انه ولاه علی الله الا حاضر بله بله بیا چون عبارات مختلفی داره کی به کس و هم داره تعلیق واردی؟ نسلی رو بذار. نسلی رو وارد داره که هیچ پیش از ازدا نبود خدا قبل خطا. هی سوال میکردم که قبل خطا ویدیو گفته ازدا بزن. ضرور گفته. بعد قبل خطا تا مهاسل ازدا تو گرفت. خیلی عجیبه. بعد تا مهاسل حضرت تو هم گرفت. بعد ابو به کشی روایت کشی فروردده. حالا این یه قابل قبول نیست اول خطاب در حد نبده که بتونه بهسرارتی رو بکنه بله که بیامثل مااصل از رو بگه. چون خیلی روایت متن زشتی اندار نمیخورن. یکی در اول خطاب شبید آعاده ای هم شبیه در حال ظراره داره. اندسه آی هم نووین خود ابو به کشی هم داره که نتونی مزخرف اصلا قابل قبول نیست، لیکن متاسفان دیدن بعضی از سنی های محاصر و از این رو که مثلا ببینید زراره که یاد بوده مثلا ریش امام شمید بله در روایت شماره دهی که ایشون آیخوی نهار فرمیدن بله قال سمیه فعبا عبدالله از مفضل هم به کرده ایشون هم متعن به خطابیان سمیه فعبا عبدالله یقول اتق سفله سفله ایسان پس ایسان پس ره نهایت سفله ف فلم یقبل منی سفره احتمالا باشه افرادی که خودش سفره مفرد هم هست بعد در روابط دیگه جایی که این بر نیستند اشتا فن. لعن الله اول خطا، و لعن من قتل من و لعن الله من بقی من و لعن الله من, من دخل قلبه رحمتون لهم قیل عجیبه من نه سألون کسانی که اون فکر بودن بله این یاد این اوازداره قال ابو عبدالله الله حساب خان اول خطاب احمد فکنت و احدث و من بهش مطلعی میگدن فکان لای بکنه و کان یدید و مهنده خودش اضافه میکرد چیزی که ما میگفتیم باز برگذاش اضافه میکرد حالا به هر حال میگم این روایت حسان در دروازه بهن عبدالخطاب کلام من, من الله ایمان کلام ما کذب به ابی سلام الله و ایمان از موسی بن جعفر الله علیه و آله همین دیوواتی که گفت هر این, این بد نیست حنان سرید قال عند علی عبدالله و این موثر کلام و نحنو فی سنه سمان و سلاسین از کنم سال کشت فقال مویستر بیا و زوتی این احتمالاً زوتا باشه، این چی هم هست زوتی نیست در مارم جوالت و فضاک عجبت لغوم کانو یعتون معنی الهاد الموزه کسانی که با ما بودن فنقه تحت آثار هم از این کشته شد 132 بنه عباس به سرده رسیدن 136 منصور دوانگی آمد به ایشون حدود سال 138 خیام مسلحانه کرد و از دین وقت و فنیت آجال اینا افتادی بودن که اینجا می آمدن حال نابود قال علیه السلام و من هم چی بودن که اینتو قلط و عبال خطاب و از بود اینا با ما بودن اینتو و کانه متک همه تکیدو فجر است نشست در طرف سما و ثم قال ابن الخطاب اینج ابن الخطاب نوشه علی الخطاب نوشه نوشه الله ون ون و الملائکه و الناس بالله انه کافر و فاسق و مشرک و انه في اشد و ضب ما عشيه ثم اسون افسو باشه من درم نیستو دارم در کسادی که علی اجساد مصیبت نه نا این که به خاطر او من این روایت امام مسرف اشد بالله انه کافر و فاسق و مشریح این تعابیر رو که به اصطلاح ب بعد در اینجا داره که اینجا یه داره که لما لب قوم الذین لب و کوفه در خلف علاقیت داره اینجا تعبیر نکرده چیه خواستیم چون محروم بود که اول خطاب که این گروه را اندا شعارشون لبه یا جعفر بود با شعار لبه یا جعفر شروع کردن به اصطلاح بیان مسلحه نکنن که همشون کشته شدن در این روایت دیگه بله نه علی ابن حسان نه این دوست درست گوشن آل زکر ایدهو جعفر بن واقع و نقران من اصحاب عبدالخطاب فقیل نهو صحاب علی یه تردد و غالفیه این،, این طور میگفته جعفر ابن واقع یا عبدالخطاب و هول لیف السماع الاف الارضه الاف آل حول امام جوی دیگه هم داریم که امام میفرماد راجع به ما چی میگن میگن شما خدا هستید من فسمای اله هم فلعرز اله هم اله سمای که ملون شما اله هم قال خوال احمان فقال ابو عبدالله علیه سلم لا ورده لا یعوینی و ایه سک و بیت من هیچی خودی با او در یک جهر هم نبیشم خم شر را من الیهود و ال نصار و, و الذين اله از مشرکین و یهود و مجوز هم در و الله ما سرد رحمت الله ما س... س... تسقیه را هم چی اونقدر و نعزیز جع... جع... جالفی صدره ما مقالت یهود و محل ها و اسم ها خب الان این آخر بله الاخره این حدیثی که برده روایت دیگه این روایات مجموعش زیاد وکان مغیره اینطور وکان کلار اینطور برده اینجا به مناسلهلیث این صفحه 252 این هم خیلی درجیح بود ما باور این بوده چیزهایی ما باورم برای ما الان خیلی تعرک باور حال بله با سر ضعیف سع ام تناسخ و سر ه رو تا قال و این خیلی درجیح شما الان در آثاری که بهده از این قلات نسبت داده نمیشه تا به مخذ آنون بعد از کتاب ها متفاوت نسوازی میشود مثل اسرار کتاب ال هفته و ال اوله سرایحتان چیش ترند صفره خیلی عجیبیش توش در اون زمان دست تناصخ بین اینها در کوفه راه افتاده اینم چیز قریبی است اصلا اینجا داریم ما من در از ایده اش خود را هم شنید تو اول دیشی اولن تناصخو داشتیم ایده از ولادت چی ایت منحرف زدن تمام حال به تناصخ اینم من مخفف کندم چون خیلی عجیبه در این قسمت بله یا مثلا در زیدش داره که این سراشم بد نیست خوبه بله قال این نفیه حضرت متعرض شدن. قال این نفیه منیت و اینقدر دروغ میگن حتی انه شیطان لیقتا جلال که شیطان باید رویش در سخونه رو بله این رواهد که دیگه خیلی روچند نیست بله ما زمان روچند ما دیگه سرش نمیکنه حالا ابو الله، کفار که میشه رو ادوسش کرد، که لو من اليهود و الذين خب میشه با این شواهد الان امده شواهدی رو که ما داریم در این جور تعابی فاسق و مشرک و کذاب و نمیدونم افاق و حفیم و کندی میده این رو در روایات امام صادق راضی به جماعت عبال خطاب داریم که بدون شکی که از وعصای خط قلوبه از که مجموعه افکاری که بود نسبت شده یک نوع ابهامی داره قلوب سیاسی قطعا به اون نسبت داده شده که این جریان از این رفته قلوب عقائدی هم به اون نسبت داده شده که گفته امام صادق من پیغمبر او هستم. قلوب عملی هم به اون نسبت داده شده مثلا نماز رو روزه نمیگرفتن اما همونجاریه رو که شنیدم نماز مغرب را اگر داخل نکردن می‌فهمم والا شاید که یک برهه‌ای یک کارزشی کردم بعد مثلا کلاً نماز رو ترک کرده باشند در هر حال مجموعه افکارزش و غلط رو به اینها تناسب هم که الحمدلله به نسبت داده شده و رلایا که ما در این حیطه مجموع تعبیر توندی مثل افوا و عفی و کاثر و مشترک و شعر و بود که میشه با مجموع اینها اینا را قرینه قرار دادیم تو اون روایت درسته اون روایتی که میگه اهل بدع رو که دیدیم فعکس اومنال وقیعت تیه مصبه هم اگر این رو بگیم باز یه چیزی به در کاری بکنیم یکی این که بگیم مراده از سر این سبه اصطلاحی نیست مثل همون مثالی که اول عرض کردن مراجعهक्षात بیان حالات خودشونه مثلا به گفتنی که به کسی این دروغگو این کوفه حساب میشه اما وقتی امام میفرماها بگن که این دروغگو سشی ابو بهسا دربر اون جمع نشن این دیگه سر چون واقعا دروغ میگفته نه این که حالا مثلا و این عمروش بین اصحاب هم جوری شده که در کوفه فرسردون همه از شیعه ای که در کوفه بود هفت سال نفر باهم میونن بقیه از اون جدا میشن این مثل همونی سیستی که شراب میخوره بشه شراب خواهر, خواهر, خواهر پس مراد از در اینجا سبه نیست که مثلا بیشرف بیناموز مثلا چیزایی که به اصطلاح انجام نمیده یا باه تو هم کار رو انجام نداده باشه پس بگیم مراد عکس رو منر قول فیه قول فیه مشکل نداره ولی وقیعت فیه اینا مشکل نداره اما اون مشکل داره. کلمه سبه هم یا ممکن است مراد از سب ارز کنید خلاف ظاهره مراد اینجا لعن باشه پس درابر ممکن ممکنه این حدیث رو به یکی از دو برس تفسیر بکنید یا مراد این باشه که لعنشون بکنید چون لعنجایی دو مشکل ندارد یا مراد این باشه سب بکنید یعنی به انفازی که درات برای همون کارزشتشون میکنه مثل شرمان من یهود و نسارا و لعنه از حالا قیل از زحمت الله علیه مجموعی حضر آیه از این سب... سبب در اینجا به معنای صفت زشتی که در اونا هست که شما با اعلام این صفت زشت یک مسئلات علیه رو انجام میدونم که مردم منحرف نشن اصلا ندونی که یک برسی که در عوایل پروتکل جال حد رو ملاحظه در بحث رجالی میگن عوایل رو اجازه درستی چون که این بحثه رو این دو گفت این خب بگید اینم از همون قبیله یعنی این که امام میفرماید اهل بده رو سد بکنید این اینطوری مثلا این کذاب به افواک این گناهکار این بدع احشاگر. مراد سد اصطلاحی می حالا یه حاله فکره الان به ربایت واحده بسیدیم از اون قوائده واضح چون خب فرصم مثلا اصحاب امیرومی و اصحابشون اصحاب معاوی رو سب نکنیم خب یه از اون که برتر از اصحاب معاوی وجود نداشتن که بعید ما به تمانیم با این ربایت واحده به با نجمه روابطی که داریم اصوات سب به اصلاح اقتلاح بحثان که دیگه به طریق اولا معصم اگه بگو ببینم به عکس من فکر میکنم نتیجهش به عکس مردم بهنار عقوبت بذاری کن یعنی اگه ساد دروغی بونه بگید مثلا بگی این پدرش مسیحی بوده بعد گج می‌گید نه پدرش مسیحی نبود مثلا مثلا پدرش یهودی بود دروغی یک نسبتی بهش بدید یا بگید فلان کاری کرده یا مثلا فلان وقت واسه در سفارش کنه برنامه درست می‌دونم مثلا خیانت مثلا خی نه اولی نبوده کلاً جای دیگه بوده قرار یک نسبت پای دروغی رو اگر ما به افراد بده اهل بده بدی به عشق بنوزن تطبیقش میشه نه اینکه اونجوری تغییر باشه اینکه توجیه نمازمشو مثلا فرض همین ایشون نماز نمیخونه فرض میشونه زنه میشونه طبیعی بله این این این مقدار به مقداری که اهل بدعت باشه رقی شده برای خودش حوال خطا در کوفه برای خودش عنوانی قائل کرده ولع به یا جعفر میگه و که به حق رد میکنه حزن میخوای که این کار گیرش بده ظاهر بکریم برای شوپرا موتور این استفاده میشه و اکثر اول بله درسته و لغیه درست اما صدهم کلمه صدهم یکم باحتوهم هل کلام اینجوری کلمه است ممکن است مراد اصل لعن باشه از نه به نظر من باهی تو هم یعنی انصبو هم مثلا این هر که از امام نرموند دروغ میگه مال امام نیست این میگه از میگه بیخود خود میگه اینم درست دیگه درست یعنی بگید این اهل بده آمدن مثلا میگن که این فقید احکام بفقید اونه دروغ میگن اونه فقید محرومدن دروغ میگن این... امام نشکن دروغ مراد از باهیت رو هم این باشه این حرف بدینی نیست نسبتا حال چون روایت واحده است و ما شواهدی بلیگه مثلا امام بید بگه بله این شخص کالو شما به نصافه درو بشتگیم بگه این مثلا جاسوس این فلانه اثبات این, این مقلب حالا اگر در زمان که وسایلیت تو باقی جرمی کم بود خیلی مشکل نبود در, در زمان ها که آسان سریش بیشتره بگه خطیه یعنی اگر واقعی نصال دروغ به افراد بدید به افراد بده از گذار بیشتر فقط ان تقریهتشون میشه مقصد شریعت و خلاف های اصلا با دروغ نمیشه تحسیل شریعت این هم راجع به مورد دوم استثناء دوم که انصافا میشه اجمالا قبول کرد با این حدودی که عرض کردید و الا انصافا خیلی مشکله اون دو تا کلمه ای؟ خب این حدیث خالی از اشکال نیست مورد سروری که مرحوم شیخ استثناء فرمودن، که گای پدر به فرزنداش می‌کنه، استاد به شاشه وارد کردم سالونا درس مثلا گوی از اصحاب که خصوص درроде در این ماوره یکی از اساتید اسمش یعنی سوالی ایجاد مثلا بچه‌ای اونا فلان این کاری بالا رفت که ما هم میشفتم به هر حال بله عصر که اینم مرحوم شیخ استثناء فرمودن، اینکه میگم گله یمن حالا زمان حالا کارها گره ایشان و تمایی هم کنم به استظهارش از آیه مبارکه انت و مالوکه در حبید و ما نمیدیم چون مرموم شیخ چجوری این حدیث قرار کردن و محل استشاد ایشان به کجای حدیثه چون در این حدیث مبارک دو چیز رو در یه قدر قرار میدهی یکی انت و مالوکه شاید شیخ و مالکه خونده باشن انت و مالکه یعنی هر حیثیتی که داری قوله که در یکی از این هیکل‌ها تو پوشش ممکنه. حالا یعنی اونی که الان مشوره. ها همین. مثلا ببینید. اون که الان مشهور در روایات ما یه بابی داره در وصايه چند تا روایت داره و شعر نزولی حدیث اونجا آمده من چه کلم مترجم خیلی خوب دیگه که ان یه فرصتی پیش بیاد روایت و که تو اونجا مترجم بشه. اونی که انسان هزه باید میفهمه مالکه اصلا مالکه این نیست و ولذا احتمالا شهر تمسک به انته کرده باشه انته لعبی اما انته تو جرد نه باشه یعنی اولا باز ببینید که این استظهار از خودم فقره حدیث شده از انته شده یا از کلمه یه مالوکه اگه مالوکه باشه یه قطعا نست سبتی دوز انبال می که میکنی من شیخ مالکه کنده باشه شاید نمیدونم و مالکه یعنی تمامی شعون تو یکی از شون انسان احترام انسانه مثلا پدر میتونه احترام تو رو برداره ممکن الان احتمالاً و هر حال تا اونجایی که شباهد صدور حدیث هست از کل در وسائل در جزء دوازده چاپ قدیم در باب تجارت این یعنی بابی داره چند تا حدیث داره حتی از امام میپرسه امام توضیح میدن که مردی دلش رو چی گذاشتانسه به علاوه پیش پیروان گلترفه عن فرزند جمالی که داره حالا من وارد اون بحث میشم در هر حال این بحث اول از این چاله در بحث میقاسب آمده در ایده از ابواب فقه هم اومده اینجا حالا برای شیخ بی‌مناسبتیونه اما تو امروشه کمی سرطه هی که خیلی بی سرطه آمده هی داره خیلی روشن نیست مثلا تو بحث استفاعت رو زن. تو اروا داره چون اروای مقدار از پچه داره فروع زیاد دیده از استفاعت داره که اگر پدری بود خودش مستطعی نیست اما پسرش امروز زیادی داره آیا هشت براش واجب میشه گذاره به انتلا ماله که لعبی بله خود ماله بچه هم مالی هاش مستاد تو مسئله استطاعت نفشه شده تو مسئله زکات و استحقاق زکات خیلی مسائل فرق دیگه به این مناسبه که مثلا آیا پلر میتونه اموال فرزند بدون تصرفو اصلا برداره مصرف بکنه بفروشه تو این انواع زیادی. مثلا برو خونه عکسش حفیزه داره بفروشه برای خودشه آیه زیادی ما در فقه داریم و لکه انصافی که اثبات عموم این اناندت شد خودش تو مالی هم مشکله هر دوش مشکله پدرمون میتونه با مال بچه مستطح بشه خصصول استتصاار داره پدر با مال بچه, بچه. روشن نیست میشون تقاصیل فرو اشتفات و اووا فکر بشه اصل هم خیلی مناسب میشه ما این رواتش رو بخونیم که از این بخوام برداشته بشه پس به هر حال این که بگیم این مورد استرس شده به خاطر این حدیث انصافا استرس ها ساابق آرخوی هم اشکال پرنم اشکال آرخوی به جاست استثنان سابه بله یه چیز دیگه هست اون انصاف این گفت زور رو میخواد شاید عرف بعد از الفاظ رو که پدر شدید این رو سب حساب نکنه شاید عرف یعنی در مقام موضوع چرا مثلا عرف حالت پدر یا مادر با بچه های خودش رو اون حالت چیز نمیبینه حالت سب نمیبینه ممکنه این لحظ رو ازدار سیدار در حول فرموندن سکلت که آمد کنید مادر در حضر بشید حول گوه من کسی دیگه بود اسم مادر بود جواب رو شید این ممکنه که مثلا این کلاب از لسان سیدار شهدار این همچنی که حول فرم رو پرمید ما به احترام شما این حساب نمی کنیم میکن اما کسی دیگه باشه چرا این این امکان داره یعنی امکان موضوعی داره آیخوی هم اشاره هم داره حقاً با ایشان انصافا نمیشه در موضوع بین بیگاره با پدر یکی حساب کرد. ممکنه بعضی از الفاظ از پدر مادر یا حتی بزرگ خاندان جمع عموی بزرگ این خیلی سرد حساب نشه بفنه شوال ندر رحمه الله آن ولده و علاقه الرحم داریم داریم قبول داریم اما این عرفیت داریم یعنی انصافا بحش موضوعیش رو نمیتونیم انکار بکنیم بحشی بیعدبی نه ببینید از کلم اونم نمیتونیم اطلاق بودیم تمام الفاظ زشتی اینا بعضی ها بعضی ها شاد نبینه نه همه رو نه تا اون درجه بالا شاید مثلا این که ایشون منو هم یه بعد از اساتید مثلا خب عسکرم یه واقعه بود که معلومه وازیه علیه السلام شکایتش علیه داشت میفه بعد دو بعد چین رو کلهش کلش عمامش شیخ بعد ها خود در یک جایی افتخار خودش حساب میاد که وازی از کلهش بعد میاد خب ممکن اوقات یه مسئله یعنی خب میاد اسم وازی به هر حال جایی میشه که افتخار در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 قرار <تصفيق> که انصافت عرف یه مقداری به لحاظ موضوعی می‌بینه. این نقطه میدونم آیا خویم اشاره دارن این هر به بدی نیست برای به انزولو سمند قرار است به هر حال انصافش این رو باید قبول بکنیم که استثنان نیست خروج تخصصیه نه تخصیص باشه چون دلیلی بر تخصیص که نداریم؟ دار نداریم که یکی رو سب غالب ولدیت چیزی نکردیم که ان تمام مال و سلعتی کنی کنی کنی کنی کنی کنی داریم پس به لحاظ حکمی تخصیص نداریم اما به لحاظ موضوعی تخصص داریم و نیست بعضی از مراتبش و بعضی از الفاظش در نظر ارس سب نداشه مادر بگه بیوی انسان بگه خاله بزرگ انسان بگه ارخیتش مثلا استاد بعضی از خودش. این صافر میشه اینه دبور این صافر چون مسئله مسئله اورفی تشریز با عرفه این رو میشه قبول کرده قانون عنون نه تا اینجا این حرف سیر هم تمام شد یعنی این ماده از حرف سیر ماده بعدی سه که مرحوم شهر کرده صلاح نفسه وارد بحث سهر میشن میشهالا دیگه فرده شروع نکنید هم وارد روایاتشو بعد آیاتی چون آیه قرار هم داد میشهالله تعالی نباید امروز داره اونجا توزیاد